بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و علیه نستمد از کنم که درباره توهید توحید یک تا پرستان هفته پیش مقدمی گفتیم در این زمینه که عقل اجازه داره در اعتقادات اظهار نظر بکنه و گفتیم که این موضوع مخالفان متعدد داره یه دسته اخباری ها هستند که میگن عقل اجازه نداره در این مسائل به دلیل اینکه که شرع ما رو نه کرده کفیم نه شرع مقدس اسلام اولی مرجش قرآنه که این همه در مباحث عقلی خودش دلائل آورده از واقعا توصیه کرده بنابراین حرف شما روایات شما بیعتبار تازه اون روایات هم مخالف با یه دست روایات دیگه است مثلا در شیعه در اصول کافی کتاب العقل بل جهل داریم کتاب العقل بل جهل اونجا نزدیک بی روایت در اهمیت عقل آورده حتی از یک شخصی ظاهران ابن سکیت که اگر روز تره کرده باشم او از حضرت رضا پرسیده که امروز حجت بر مردم چیه حضرت فرموندن عقل که به وسیله اون کاذب از صادق شناخته میشه نگفت منم در کتاب کافی در, در احادیث اهل سنت هم همینطور قذالی در کتاب احیاء علوم الدین همون در جلد اول یه فست مفصلی رو به علم و عقل و روایات تو از رسول اکرام نقل کرده و خیلی با اهمیت پس حرفای اخباری ها نه با اخبار میسازه، نه با قرآنی که این همیگه هم للکم تاقلون بعد رسیدیم به صوفیه صوفیه گفتن که ما دارم خلاصه میکنم که مطلب دنبالش ادامه پیدا کنم گفتن ما کشف و شهود رو جانشین عقل میکنیم عقل حق نداره در مسائل توحیدی وارد بشه. به اونا جواب دادیم که کشف همطور که خودتون معترفید مثل رؤیا رمزیه باید عقل رمزگشایی بکنه و مقصود حقیقی رو از این کشفی که شما کردید بیان بکنه با توجه به آیات و قرآن و دلائل و این حرفا این عقل از مقام خودش معزول نیست به فرض اینکه کشف شما درست باشه و خیالات نباشه و الهام شیطانی نباشه باز عقل حاکم اونجا بعد دسته سوم دارم خلاصه میکنم اینا رو مفصل گفتم کسانی بودن که معتقد به علوم تجربی هستند و میگویند که هرچه آزمایشگاه و لابراتوار بگه اون ملاک بیرون از اون علم حاصل نمیشه بهشون جواب دادیم اولا این حس رو از کجا پیدا کردیم اینکه منحصر تمام معلومات بشر به آزمایشش از کجا پیلاولت دلید برین ندرید ثانیا اینکه شما در همین علوم تجربی از کجا برای شما ثابت شده که علوم تجربی مداک شناخت کل اشیاء از کجا اگر بگین یه تجربه رو به تکای تجربه دیگر ما از کم قبول میکنیم که این میشه دور این تجربه به چه دلیل حجت به دلیل اون تجربه اون تجربه به چه دلیل حجت اونم که مثل اینه بنابرین این دلیل نیست این تکرار ادعا مگر اینکه بگید عقل قضاوت میکنه میگه عقل میگه چون این کار بارها تجربه شده این قابل قبوله بذار تجربه رو با خود تجربه کنم که استدلال بکنید این عین ادعا رو تکرار کردن بنابراین در هر حال عقل معذول نیست بر کنار نیست از فهم عقایق به خصوص که این همه قرآن کریم هم. حتی از دوزخیان نقل کرده لو کننا نسمع و نعقل نقل ما کننا فی اصحاب سعیر اگر ما از پیامبران هر شنیده بودیم یا اقلا خودمون تعقل میکردیم امروز داخل در آتش نمیشدیم بنابراین سم و عقل رو با هم آورده این یه مقدمه ای بود که مفصل من هفته پیش از کردم و مدارف شده اینا رو کردم. حالا گفتیم که این مقدمه مدخل بحث ماست یعنی محل ورود در بحث که ما به یه دستمون عقل گرفتیم یه دستمونم قرآن کریم وحی که اینا رو با هم مقایسه میکنیم که اشتباهی نکرده باشیم عرضه میکنیم رو به قرآن و با این دو نور وارد بحث توحیدی میشیم. در بحث توحیدی اولین سوالی که پیش میاد این است که چه لزومی داره اصلا ما درباره خداوند به تحقیق بپردازیم، درباره مبدع آفرینش تحقیق کنیم. هر کاری اول باید لزومش اثبات بشه بعد وارد بشیم که درسته یا غلطه. چه لزومی داره متکلم اسلامی در این باره دو تا پیشنهاد کردن یکی این که گفتن ما وقتی که متولد میشیم از روزگاری که متولد میشیم تا بعدها همیتون میدیم نعمتهای فراوان به ما میرسه عقل قضاوت میکنه که سپاسگذاری از منعم کار است لازمه بنابراین برای سپاس از منعم باید این منعمی هست یا طبیعت کور داری این کارا رو میکنه باید تحقیق کنیم که اگر منعمی بود سپاس اون منعم رو بداریم اینا هم معتزلی ها به اصطلاح قاضی عبدالجبار همه که از بزرگان معتزل است در کتابش المجموع به اصطلاح کتابشه اونجا گفته هم شیعیان این قول رو گفتن از کنم که اشعری ها و اینا زیاد به این امور میگن هر چیزی باید شرعی باشه عقلی نباید باشه بالاخره این که در بین اهل سنت و شیعه این دلیل رو آوردن شیعیان یه دلیل دیگه هم اضافه کردن که فازل سیوری سیوری یعنی فازل مقداد تو کتاب شرح قابه هادی اونجایی که کتاب کلامیه اونجا گفته که یه دلیل دیگه ای که ما باید تحقیق کنیم که های خدای وجود داره یا نه این سخنه از کنم این است که بین امم هست بعضی میگن هست بعضی میگن نیست اما بفهمیم چه بسا باشه و ما مسئولیت بریم در برابر و وضعیف هونو در برابر انجام ندادیم گرفتار بشیم پس بنابراین دفع زرر احتمالی حکم عقله وقتی که عقل برای احتمال هم بده که زرر بزرگی در پیشه ما رو برمیانگیزه به این که تحقیق بکنیم قضیه رو بفن. پس یکی شکر نعمت یکی دفع زرر احتمالی این دوتا رو از ارزخانم اینا متمسک بشدن برای اینکه اجازه ورود در مباحث توحیدی مباحث عقلی توحیدی داشته باشه ما این دو نظریه رو به کلی رد نمی کنیم. اما می این نظریه اخلاقیه ممکنه اشخاصی باشن که زیاد دنبال اخلاق نباشن بیشتر مردم همینطورن دیگه ولذا مرزمه به اینا نشن آقا حالا از ما چیکار کار به این کارا داریم از این حرفا بحث ما یه جور دیگه است در این باب ما می گوییم که انسان صاحب عقله و عقل در انسان از کنم جانشین قریزه شده در حیوان انسان هم قرائز داره ولی کم کمرنگتر و محدودتر شده عوضش عقلش تر شده در حیوانات هوش و درک زیفتره قریزه قویتره از کنم که حیوانی که اصلا مادرشو ندیده جوجه است از روز اول از کنم که گرفتن از مادرش آوردن یه جایی دیگه یا بچه گربه یا بچه هر هرچی باشه میبینیم رو عمل میکنه رو انجام میده همون کارهایی که مادرش کرده بود مادره اینا رو بهش تعلیم نداد از روز اولی بچه گربه رو گرفتن ولی معذرت میخوان وقت که میخواد مطفوع بکنه زمین رو با چنگش کنار میزنه بعد کارش میکنه نمونتها خاکا رو میز روز بچو گربه که یه بارم ندیده که خود من شاهد این کارا بودم یه بارم ندیده مادر این کارا بکن در حیوانات غرایز قویه و غریزه معمولا اشتباه نمیکنه عقل محدودیت غریزه رو نداره وسیع‌تر قدرت پروازش زیاد‌تر عوضش اشتباه هم داره ببینید بشر نزدیک دو سه هزار ساله بلکه بیشتر با زنبور اصل آشناست کندوهایی که اون می خانه هایی که شش زل داره زلها و زاویها همه با هم دیگه مصابی. و کسی کتاب زنبور اصل موریس میترلنگو اگه خونده باشه مینه چه است؟ اینا کندوهای شیشه ای درست کردن از بیرون نگاه کردن این حیوان چجوری اون خونه ها رو می سازه یک کسی مثلا یکی میره به سقف خودشو رو می آویزه هم همشطور پروبال میزنه که اونجا متوقف باشه متوقفی که با پروبال خودشون نگه داشته یکی بعد لاابش از هم به صورت یک خط میاد یکی دیگه میتاس به زیر اون خط دیگه یکی دیگه خط دیگه تا یک عمود درست بکنن بعد خط از این طرفی رو بزنن بعد خطوت دیگر تا این خانه های که نه پرگار داره نه وسیله ترسیم داره زلها زاویه‌ها مساوی بعد بره چجور شیره گلها رو از کن بچشه بیاد اینجا دمه کندوهای بزرگ پلیس هست پاسبان هست دهن اینان رو مزه میکنه مبادا یک از کنم که گیاه تلخی رو چشیده باشه اصل رو خراب بکنه اگه باشه اجازه برود بشنه نمیده اینا رو این مهندسی رو کی به اینا یاد داده؟ این غریزه الهی است که در اینها هست پنشیچ هزار سال بشر با این قضیه آشناست خانه ها تفاوت مکرده همه زلها زاویه ها مساوی برو پنشیچ هزار سال پیش کوخهایی که انسان ها می ساختن با کاخهایی که امروز می مقایسه بکن اووووووووو اینشون آرشیتکته ازش بپرسین چه خبره چقدر بشه تلقی کردن پس عقل کارش تکامله غریزه تکامل نیست اوازش عقل اشتباه داره غریزه اشتباه نداره انسان از کنم که تفاوتیه که از تفاوتهاش با حیوان اینه که قرائزی که در حیوانات هست جانشینش در انسان عقل شده اما کلی قرائز انسان هم از بین نرفته قرائز انسی داره قرائز دیگه داره با این عقل از کنم که زندگی میکنه این عقل در امور عادی زندگی به علت و معلول پی برده آمان سرما خوردم سخت چرا؟ به چه علت؟ هیچی باد زرد میامد نمیدونم فلان من جرای کلر خوابیدم فلان کردم آقا من دردم درد میکنه به چه علت؟ امروز یه قضای ناجوری خوردم دردم درد گرفته فالان به چه علت؟ به چه علت؟ به چه علت؟ تو تمام زندگی بشر چه منکر، چه ملحد چه مؤمن هست یعنی بشر در تجارب زندگی با علت و معلول ها آشنا شده بعد یهو برای خودش سال پیش می آه. این حوادث تو عالم، این آفرینش این آبش به چه علت خواه هر کسی این سالات برای پیش آمده حالی یه کسی تو سر فکر خودش میزنه میگه علتش همین حوادث طبیعی طبیعته یکی بیگه نه میگه در اینها هموهنگی هست، هدفگیری هست، نشانگیری هست این قرائزی که در حیوانات این آیاتی که هست پس بعد به حقیقتی بنابراین من میخوام بگم مقتضای داشتن عقل رفتن به طرف این سآله که از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میره و ماخر؟ نه نماؤیل وطنم روزها و فکر من این بود و همه شب سخنم که چرا غافل از اهوال دل خیش از کجا اومده اومدنم بهر چه بود به کجا میرم آخر نه و این مقتضای عقل بشره هر کی میخواد باشه باشه بالاخره عقل انسان به این جا کشیده میشه که این جهان چیه تو پدید آمده، از کجا پدید آمده، اولش چی بوده آخرش چه خواهد بود می بینه اشخاص نمی میرن اینا خاک میشن میرن یا خبر دیگه هم هست از خانم که پس از این زندگی زندگی روحانی مثلا داریم روحی داریم بالاخره بشر وارد این مقوله ها شده پس بنابر این اون مسائلی که متکلمین اسلام مرسح کردن از قبیل شکر منعم یا ارز که دفع احتمال خطر اونا به جای خود محفوظ ما اونا را مخالفت نمی ولی ما میگیم مثلا ساختمان ادراکی بشر کشیده میشه به اینکه دنبال علت معلول میره دنبال این که علت پیدایش این جهان علت پیدایش من پدرم، مادرم، امثال ما، این حیوانات چی بوده؟ ولی زا می بینیم این کشش همه رو بادار کرده راجب این چیزا فکر کنن حالا چی به نتیجه صحیح برسن یا نرسن به جهت که نیست با عقل میخوان به نتیجه بگیرن عقل خطا هم می اما این چون عقل خطا می به کلی بیه اعتبار غلطه چشم هم خطا میکنه. سراب رو آب می بینه حالا من چشم استفاده ببندی و همطور خطاهای دیگر خطاهای سم خطاهای دیگر اعضا هست ما باید دقت بکنیم که عقلمون خطا نکنه مکرر روش دقت کنیم انصاف بخری بدیم مشورت کنیم با دیگران به داخل این مقتضای داشتن عقله که انسان به داخل کشیده میشه به این عواله که از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود اگر بگیم که این حال در عقل نهاده شده نهادینه شده این وضع میتونیم بگیم هر چیزی که در طبیعت نهادینه میشه درسته مثلا ما پرس کنید که دستگاه تنفسی داریم اکسیژن هم هست اگه دستگاه تنفاسی بود و اکسیژن نبود بی خود این دستگاه تنفاسی به درد میخود به درد نمیخود ما چشم داریم نور هم هست اگر نور نبود وجود چشم ما اتطلا بی بود ما گوش داریم امواج صوتی هست اگر انواج صوتی نبود گوش که به درد نمیخود مسوجی عضو زائدی بود یعنی با طبیعت تطبیق شدیم طبیعت هم رو به ما آورده با ما به ملایمت رو همه هنگ شده همین طور است وقتی که عقل ما میگه مبدع من که مبدع این جهان چیه و این سال سال پتریه سال همه پس بعد در طبیعت یه جواب درستی برای این سال باشه این سال خیال نیست یه ضرورت عقلی است که در ما هست بنابراین باید طبیعت به ما جواب بده می توان امید داریم که پیدا کنیم جواب این موضوع رو که از کجا آمدهیم بنابراین می بینید ما نرفتیم بگیم که چون شکر نعمت بر ما از نظر عقلی واجبه لذا باید ببینیم از ناحیه کیست که شکرگزاری رو بکنیم ما کس کس بگه اون احتیاج به شکرگزیاری شما نداره از کنم که و از این شبهات بکنن ما میگیم اساساً عقل ما یه است که کشیده میشه به این مباحث چه بخواهیم چه نخواهیم و باید بالاخره یه جوابی بسید داشته باشیم حتی اون منکر خودم یه جوابی از خودش درست کرده میگه این طبیعت که مثلا این کار کرده بداخلی هست کشته شده به این سال الان میگه فیزیکتان های بزرگم رسیدن به همون مهبانک که چی بهش میگن؟ بانک و میگن این جهان شروع داره آغاز داره یه امپجار بزرگ شروع شده و پلان بعدم روابطی با همدیگه پیدا کرده و به دخلی تکامل کرده بشر پیدا شده به این صورت ولی خودشونم یه علامت سوال در برابر این پاسخ میذارن یعنی آقا اگر ما پری کوره بزرگی داشته باشیم میگذار مواد روش بریزیم پلزات اینها یه مواد منفجرم باشه یه مرت منفجر بشه تلویزیون میشه یه قطعش که این طرف افتاده اون طرف رادیو میشه اون طرف آسانسور میشه اون طرف هواپیما میشه اون طرف هلیکوپتر میشه اگه دیدیم شده باید بگیم که بابا یه کسی نازر به این انفجار بوده از اون مواد مصاب قالبی داشته قالب زده کارایی کرده بدون هدایت اون مواد خود به خود اینطوری نمیشن ربناللزی اعتاو کلشن این ثم سمهدا دلیل هدایت اون که در قرآن آمده که موسی به فرعون گفت گفت و ما رب العالمین رب العالمین چیه گفت ما سر رب العالمینم رب العالمین کیه رب العالمین چیه گفت ربنا الذی اعطا کل ای این ان است و مد این آیه دو جور تفسیر شده یکی رب ما اون کسی است که به هر چیزی خلقتش رو داده سپس هدایتش هم کرده درخت ها خلق شدند، هدایت شدند، چجوری تغذیه کنند از زمین، چجوری آب بگیرند، چطور غذا بیارن، سرپاست شکوپه بزنن، هر شکرم که میوه بیارن، حیوانات هدایت شدند، ها هدایت شدند، چجوری حرکت کنند، ستاره‌ها هم انسان انسان‌ها به وسیله عقل و وسیله که کرام هر دو هدایت شدند. پس خدای ما اون کسی که موجودات خلق کل هدایت کرد. یه قولی این است که ربنا الذي کل كل شيء خلقه ثم هدا خلق خلقه بدل از كل شيء یعنی خدای ما کسی است که به مخلوقات هر لازم داشتن داده عطاكم من کل مسلطمشش برای دیدن داشتن احتياجات تکمیلی رو میگم ما نه اینکه از پول زیاد میخواسته پول زیادم برش دسیده احتیاجات تکبینی رو دستگاه طبیعت جواب داده او گوش میخواستیم داده شش میخواستیم تو چله نیفته داده همسر میخواستیم برای بقای نسل داده همینطور به هر حال در هر صورت هر دو معنا برای آیه درست مقصود من این است که این قضیه که انسان در عقلش در واقع نهاده شده که دنبال حقیقت بره و کشف بکنه این مسئله مسئله است که در اقور همه بشر وارد شده منطقه بعضی ها میخوان مسئولیت نپذیرن خب یه کسی رفت اترش بود مکتب اون یارو مکتب دار به بچه گفت بگو علف گفت نمیگم و علف که چیزی نیست بگو علف نمیگم چرا نمیگی؟ و من ول نمی کنی منو که گفتم علف میگو بگو به بگو په بگو ته ودم نمی کنی علف برتم اون شد بیاد جدول زر. بیاد بیا فلان بیاد بیا دکره بنوید از اول نمیگم علف که راحت باشه. حالا در ازای از کنم که خدا پرستی تکلیف میاد همی خدا هست که نیست که وظیفه داری احکام خدا رو دستورات خدا رو اجرا بکنیم لذا چون تابع حبسه از اول زیرش میزنه و بعد بشر بلد خودشو گول بزنه خودشو با مقالت گول میزنه مثلا دیدید که خیلی از افراد میگن که اشخاص آقه آقا دین یعنی چی؟ ما دیدیم که این مدعیان دینداری اینطوری هست فسادشون بر همه این واضحه پس بنابراین دین یعنی شید که خودش خوب میفهمه دین اصل دین با عمل یه شخصی که الان داره زد دین عمل میکنه دین گفته خیانت کن دین گفته ظلم کن که میگهدن الله یعنی رو و والإحسان این دوتا فرق داره ولی از ها نفر من تو زندگی این جملات رو شنیدم اگه اقراق نباشه بارها اشخان عشق... آقا فاید کنوم دین بگه نمیدین دین دارا چیکار کار میکنن بهشون گفتم که آقا شما پزشک که ناجور سراغ دارید در عمرت که مثلا نسخه رو خوب ننوشته باشه تشخیص بیمار و زیادن ویزیت های زیاد میگرن ولی شما به علم طب بدبین شدی؟ میگی در دانشکت باید ببندم میگه نه یا مهندسی که درست کار نکرده باشه مبتدی باشه نقشر درست نکشته باشه ویرانی پیده بشه در دنیا موجوده باید فراوانه حال شما به میگی دانشگاه پنی رو بعد از هم درش ببندم با علوم مهندسی مخالفی بگه نه اونا سر جای خوشه. تو حالا در این قضایه میفهمی، اما در دینی که میگه این الله یعمرو بالعدل والإحسان میگه حالا این متدینه چون در واقع داره ظلم و عدم احسان میکنه میگه دین مقصره و در اعمال این مخالف دینه اولین مخالفه این شخص خود دینه بشر این طوریه. با مغالطه ای خولیطاله این مقاله ساده است هر کسی میتونه بپمه واقعی در فلسفه در کلام مغالطه های مشکل پیش کردن مغالطه بوده فلاسفه بزرگ متفکرین بزرگ حل مغالطه کردن کشفش کردن گفتن کجای این مغالطه است اینها از کنم که اصلا یک کتابی در منطق هست در منطق چند تا کتابه یک کتاب برهانه که ابن سینا محسن در شفا مفصل بحث کرده ازش یک کتاب, یک کتاب خطابه است که طریق سخنرانی و چجوری ملزم بکنیم خصم رو با مسلمات خودش یک کتاب جدل یک کتاب سبسطه است یعنی همه مغالطه یک کتاب شعره که سناعات خمسه بهش میگن پنج صنعت که در منطق تعلیم داده میشه و اینها قرار از این که دون دو مقالطات اوضاع یه کتاب رو دیم مقالطه هست که چجور با جابجایی جایی مطالب از کنم که میتونن ذهن طرف رو مشغول بکنن از کنم که مثلا مثال خیلی ساده بزنم که همه متوجه میشیم میگه در کتاب مقالطه میگه به پلانکست میگیم که چیزهایی که گم کردی شما نداری دیگه که باله پیدا که گم کردم نداره میگه وقتی شما شاخ نداری پس سوخ گم کردی پس اولش داشتی مغالصه کجاست چیزایی که انسان گم کرده نداره ولی نه هر چیزی که نداره گم کرده شما پسر نداری حالا پسر گم کردی نه و مثلا میگم تو ازدواج نکرده شما هم تو این مثالو بده به هر حال منظور این است که حسیزی چیزی را که گم کردیم نداریم ولی نه هر چیزی را که نداریم گم کردیم حالا ببین این واضحه برای همه نه من شاخ نداشتم داری بی خودی میگی ولی همین رو ببر توی استضالات پیشیده جا به جا کن مطلب را مقادسه میشه طرف هم نمیفهمه گیر میکنه برحال مقصود این است که ولی یه مقضال منطقه آدم بدونه دیگه منطقه سوری ارز کنم که بعد یه مقدار آدم بدونه که بتونه کشم مقالطه بکنه که طرف داره مقالطه میکنه بله مثلا مقالطهاتی که تو قرآن کریم آمده اونم هست دیگه مشرکین به مسلمان هم گفتن شما میگین مردار خوردن حرامه مسلمان گفتنم بله آقا حیوانی که تو میکشیش حلال خوردنش حیوانی که از خدا میکشتش هلال نیست خوردنش اون مردا رو خدا هم میرند. کسی که نگشته اونا اونی که تو میکشی با دست خودت زد میکنی هلاله این که خدا میمیرانه حرامه جوابش خیلی بازهه خدا هر چیزی که میمیرانه برای خوردن نمیمیرانه مریضش کرد، عمرش تمام شده میرانده برای خاک شدن این میرانده مزره بخوری مریض میشی خدا هر کاری که میکنه برای خوردن نیست که بعد ببینیم خدا خوردنی ها رو چی آفریده که اونا رو بخوریم. ولی بله هر کاری خدا میکنه از کان برای خوردنه نه. مردار حس یه برزی گرفته، یه فسادی داره، حث بیماری داره، تحت اون زپی که ما میکنیم اینطور نیست. این همه دارن گوشتشو میخورن که کسی بیمار نمیشه بلا فاصله ولی خوری ارکام چه ضرر داره؟ قران میگوید که اگر ان اطاعت موهم فانکم مشرکون اگر شما اطاعت از این مقالات اینا بکنید مشرکین یعنی قانون خدا رو حق دارید به دست اینا بدین که از خودشون به جای خدا قانون گذاری کنن خدا حرم المکتہبدن ول احمد الخنزیر و ماحلل قیبل الله به. خدا اینا رو حرام کرده حالا اونا یه مغالطه میکنن از هم شما تابع اون بشین مشرکین شرک در قانون گذاری آره نه قرآن کریم گفته اگر حیوانی که سقوط کنه بهش متردیه میگن اونو رو نباید بخورید حیوانی که با شاخ حیوان دیگه مرده نباید بخورید حیوانی که با یه ضربه کشتنش نباید بخورید ذلب اون شاهرگ اصلی رو میزنن از کنم که شرایطی داره رو به قبله به نام خدا مسائل مختلفی داره که تنها ظاهر مردن طرف نیست از کنم که هر مساله کومل میته و لم و لمنقه حیوان خپشده و موقوزه اونی که به ضرب چیزی از پا پای در اومده و المتردیه اون که سقوط کرده و نتیهه اونی که با شاخ حیوان دیگه مرده و ما اکل از اون اونی که شیر درنده ایو رو پارش کرده حالی قدش مونده حق نداری اونو بخوری بقیه از ارز که و ما او زب حالا نصب و اون حیواناتی که به پای بوت ها سر حتی سر بریدن زب کردن ولی به پای به این مبارزه با شرکه این یه نوع حیوان گشتش ماذر نیست که پای حیوان بارزه با شرک مساله معنوی و مادی هر دو را رایت کرده قرآن و انتا سخصمو بالازلام. حتی اگه درست حیوان رو زپ بکنی ولی با قمار گوشتشو تقسیم بکنی به شما خود زیادتر شد از این کم شد گوشتر نباید خورد که استقسام بل تیرهای قرآن یعنی یعنی بای قو... نوع قمار رو داخل این زبه بکنی و تقسیم بکنی از کنم که این برنده شده بیشتر بیشترون بالاخره مقصول من این است که اینا مساله معنوی و مادی هر دو داره پس بنابراین ما برگردیم به موضوع عقدانی خودمون که <صح> <كه> <كه> بالاخره عقل باید حرکت بکنه اما راه میخواد راه میخواد راهنمایش راه وحیه که به راهنمای نمای وحی بسیم بینیم قرآن کریم هی آیاتی رو مجرد میکنه بعد میگه روینا فکر بکنین تعقل آیا پیش خودشون فکر نکردن ما خلق الله سما واس و الارض الا بالحق و اجل مسمى و اینکسی من الناس ناس بلغا ربهم در کافرون شاویه پر صلابتیست خیلی از این آیات که مواد دیره که باید روش فکر بکنیم طرح میکنه واسه ما باید باید روی اینا فکر کنیم اقلیتون رو به کار بندیدیم تازدار در سه سوم در جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات